سلام خانوم. سلام، بفرمایید. می خواهم حساب باز کنم. حساب پسانداز می خواهید؟ بله، من یک حساب پسانداز می خواهم؟ حساب ارزی. شما پول به خارج از ایران میفرستید ؟ نه، پدرم از خارج برای من پول می فرستد. ممکن است؟ بله البته لطفا این فرم را پر کنید فارسی می دانید بله بفرمایید خانم متشکرم اینجا رو امضا کنید این پایین یک کپی از گذرنامهتان هم به من بدهید گذرنامهم اینجاست اما کپی ندارم. روبروی بانک یک فروشگاه هست. از آنجا کپی بگیرید. بسیار خوب. بفرمایید خانوم. این کپی گذرنامه‌ام. دو تا عکس هم لازم است. عکس دارم. بفرمایید. این هم دو تا عکس. متشکرم.